رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ من در تهران نمیمانم به شیراز میروم کی به شیراز میروی؟ من جمعه بعد به شیراز میروم کی از شیراز به تهران میایی؟ فکر میکنم جمعه آینده به تهران میاییم پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟ بله، تو چه کار میکنی؟ به کشورت نمی روی؟ نه، نمی توانم، کار پیدا کردم از فردا به سر کار می رویم. جدی؟ چه کاری؟ من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه میکنم چه ترجمه میکنی؟ مقاله، مصاحبه، خبر، از عربی به فارسی ترجمه میکنم آلیست متشکرم